السلام علیکم و رحمت الله و برکت شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت به خبرهای جهانی دولت اسلامی خوش آمدید امید است صحتمند و سر و حال باشید نخوست از همه سرخط چند خبر صلید الصواری. صلید الصواری. حمله وسیع نیروهای دولت اسلامی در شهر مصراتی لیبیا کشتشدن 24 عسکری نظامی سوری در شهری دیر زور سلیل سواری انهدام نوت تانک نوه همر ارتش عراق در شرق فلوجه و آغازی دوباره فعالیت وبسایت سایت اصدارات دولت اسلامی وب و در القتال ایتاالیک غیق حیات ای نقده هم یبی دولوغ م و این هم فهرسته کامل خبرها گزارشها از ویلایت دیالا حکیسکی در اثر انفجاری یک ماینی جاسادی شده در شهری معقوبه، یک فرماندی بسیجی مردمی جراحت سنگین برداشته است مجاهدین دولت اسلامی بر مقر افراد مسلح فجر لیبی که تابی حکومت ترابلوس بود در نزدیکی پول از در شرق شهر مصراته حمله کردند در قدم اول یک حمله کننده استشادی موتر مملو از مواد منفجرش را در میان موجی از این شیب نظامیان کوبید که منجر به کشته شدن ده ها گردید سپس مهاجمان استشادی دیگر وارد پایگاه شده با عساکر باقی مانده درگیر شدند در نتیجه این درگیری یک تانک دشمن غنیمت و ده عراد موتر خودرو آتش گرفت گفته می شود که مجاهدین دولت اسلامی با تاریخ پنجام ماه جاری کنترول منطقه باقرین را به دست گرفته بودند و با این کار جاده ارتباطی میان دو شهر مصراته و شهر دان را بر روی نیروهای حکومتی بستند در همین حال یک خبری دیگر از شهر بن غازی در لیبیا می‌رساند که یک درگیری میان مجاهدین دولت اسلامی و شبه نظامیان حفتر در منطقه قوارشه این شهر رخ داده است در این درگیری شماری از شبه نظامیان مخالف پوشته و یک عراده تانکشان از بین رفته است یک حمله کننده استشادی مواد منفجره را در میان تجمع نیروهای سوری در منطقه تحتوح در شهر دیر زور انفجار داد که منجر به کشته شدن 24 عسکری سوری گردید در گیری های شدید میان نیروهای دولت اسلامی و عساکر عراقی در شرق ناحیه الکرمه واقعی در شهر فلوجه جریان دارد تا کنون در این درگیری ها نوع عراض تانک یک موتر تیربار و یک توپ میدانی نیروهای رافزی از بین رفته است در همین حال یک خبری دیگر از شهر حدیثه می رساند که یک اراده بولدوزر نظامی نیروهای راقی با موشک هدایت شونده در منطقه بوحیات تامعی آتش گردید است. مجاهدین دولت اسلامی موازی نیروهای مرتد پیشمرگه را در منطقه مالحه واقعی در ویلایتی الجزیره با موشک ها و سلاح سقیله آماج حملات راکتی قرار دادند که تلفات جانی و مالی در این رویداد با پیشمرگه ها وارد گردید. و در اخیر یک خبر فرهنگی سایت جدیدی خاطر نشر اصدارات دولت اسلامی زیر نام اصدارات دولت اسلامی باز شد این وبسایت یک سایت غیر رسمی بوده دران اکثر آن اکثرا اصدارات سابق و جدیدی دولت اسلامی با ترتیب منظم و خاص برای مشاهده و دانلود مستقیم با فرمت های عالی و متوسط نشر می شوند. در سال‌های گذشته سایت صادرات روی آدرس‌های زیادی گذاشته شده که معمولاً دومین های ثبت شده متعلق به کشور خاصی بوده است و یا از دومین های عمومی استفاده می‌شد و سایت صادرات از نگاه امنیت اینترنتی محفوظ نبود و همین بود که استخبارات عالمی با تلاش‌های خود پس از مدتی موفق می‌شدند تا سایت صادرات را از صفحه اینترنت حذف نمایند حال الحمدلله پس از مدتی بار دیگر سایت اصدارات بر روی یکی از دومین های انترنتی گذاشته شده و آغاز به فعالیت کرده است اشخاصی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند از این سایت ویدیو، ترانه، اخبار، مقالات، بیانیهای های سوتی و کتابات دولت اسلامی را به طریقه ساده در و این هم آدرس سایت www.ds best 550 سادو تکرار میکنم www .d s .g رادیو صدای رادیو صدای برائت از همه کفار مرتدین و روافظ نود طاغوت شناسى، طاغوت شناسى، فمَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقان في صاملها، والله سميع عليم. الله هو الخالق والقدير مشهور امیز که طاغوت او را عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت میکنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را طاغوت میگن طاغوت حکومت طاغوت عبادت طاغوت اطاعت و متابعت و کسی که دعوه میکنه که به الله تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لیکن قلبان تاغوت دوست داشته باشد یا زباناً تاغوت تاریخ میکرده باشد یا احملاً از تاغوت اطاعت میکرده باشد یا از نواقض کلمه از امده نواقض ایمان این برنامه را شب ها و شب شبها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید لما باء الى انتك وسمرتها فلا بقاء لجنف والكذبي شناوندهاي مؤمن ومسلم راديو صدى الخلافات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته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 و تعدادی از مردم با وجودی که می قرآن و سنت حق است باز هم به دنبال همین رسانه ها رو و چنان به تبلغات پوچ آنها گوش می‌دهند که گویا ایشان بر آیا همین رسانه ها هم تاقد شده می یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم روحانی صحیح اول بعد گفت که همونطور که از سوال شما هم پیداست بین رسانه ها از نگاه آن را که این می دهد.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 و ادوات طاغوت است و واجب الاجتناب است یعنی بر مسلمان ها لازم و واجب است طبق فرموده الله متعال که الله متعال بر ما شما انسان ها خطاب کرده برای ما ها که امر کرده که شما وجه بو طاغوت یعنی الله وجتن بو شما الله را عبادت بکنید و از طاغوت بکنید لذا این رسانه ها هم واجب الاجتناب و بر مسلمان ها لازم و واجبه که از اونا اجتناب بکنه و دور بشه از اونا. جزاك الله خيرا شیخ شما به خوبی میدونین در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه ها زمانی که اسلام تازه قدیرم کرده بود افرادی در صف شرک وجود داشت در قبیله مشرکین وجود داشتند بر صحابه ها بر اسلامی که به رسول معظم اسلام نازل شده بود تبلیغات میکردن با شعر سرایی با خواندن ترانه ها مشابهت بین اونها و همین رسانه های کنونی در کجاست و تفاوت اینها در کجاست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 و آله در این اصر که ما زندگی مینیم باز مسلمان ها از ارشادات نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کمی به دور مانده و لذا آیات و قرآنی هم که بر ما نازل شده و بعضی از علما هست که مخصوص همو زمان میدانه لذا آله هم میشه به کمی این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 در جامعه کنونی احزاب گوناگونی و نامهای مختلف قدلم کرده و افرادی را دوربر خود جمع کردند مانند احزاب کمونیستی، سوسیالستی و دموکرات آیا همینها هم, هم تاغط شد می توانند شخصی به طور مطلق در مورد احزاب که مطلق احزاب و یا اقوام و یا دیگر اجتماعات،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 یعنی کدام فیصلهی که الله اتحال کرده او فیصله را اونها عمل نکند همین حسب یا قوم یا اجتماع هر نامی که داشته باشه یا قریه یا یک سمت اتفاق بکنه که در یک موضوع ما بیایم که شریعت الله مطال را عمل نکنیم و باز اینطور احضا و یا اینطور اجتماعات را تاوت گفته میتونیم و بدیم منعا که واجب الاجتناب از اینها این یک مسلمان باید به طور وجوب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 دست به تپانچ و شمشیر برد و موذوگیر شد و جنگ را در مقابل خلیفه شروع کرد باز اینجا حکم تاغوت بر از اونا داده میشد چرا چون اینها مرتد شده حکم طاغوت داده میشه و واجب الاجتناب که از اینها اجتناب شده و هیچ مسلمانی باز بر از اونها نزدیک نشده باشه جزاك الله خیران شيخ سیب دیام و حجت و حجت های داغ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 و مطبوعات زیر اثر غربی ها است دشمن که علای ما می جنگند به دو قسم یکی دشمن است که انگیزه دارد و یکی دشمن است که انگیزه ندارد پینشم شب شبها از رادیو صدای خلافت نوت اف ایم.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 حضرت ابوبکر صدیق فرد دوم مسلمان ها باز بر علیه از اونا جهاد اعلان می نه بخاطر چیه؟ خاطر یک موضوع که یک فرض الله متعال را اونا می گفتن که ما عاجز هستیم نمی تونیم بکنیم انجام بدیم لذا اونها تاغوت شد و علیه از اونا جهاد شروع شد و جهاد کرد حضرت عبو بکر صدیق و در عمی زمانه که ما هم زندگی مینیم اگر کدام ای که یک قوم مینه یک اتفاق یک قوم مینه که مخالف شرع منزل الله باشه مخالف شریعت الله باشه باز هم خوب است که همین ای که مخالف شرع الله مطال کرده باز هم خوب است که را دو تقسیم کنیم به طور آگاهانه و غیر آگاهانه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 به جای اف یا قصاص اینها دو تا دختر گرفته یا چند تا دختر گرفته و دخترها را داده به قبیله مقتول داده شما شاید دیشب دیدم نمی در زندگی در حیاتتان ما به طور دقیق برای شما ای را بگم که در منطقه روز اولسوالی خاشرود آدمی را که زنا کرده بود و را روی از او سیا کرده بود در امارت اسلامی که متاسفانه. ما هم در امارت بودیم که او از او سیاه کرده بود بازار و باز ما از همه روز ما را گریا گرفت که ما به خاطر شریعت اسلام آمدیم که اینجا شریعت قائم بکنیم حالا میبینیم که مخالف اسلام ما حرکت مینیم و همچنین در دیگه منطقه ما دیدیم که به جای اینکه که قاتل قصاص بشه و یا به جای اینکه که قاتل عفو بشه باز از قبیله قاتل یک دختر یا دو دختر, دختر را گرفته برای قبیله مقتول دادن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 یا قوم مردم باشه یا حدود جغرافیایی مردم باشه یا فرهنگ مردم باشه او در حق همو انسان تا میشه در حق همو انسان که او را منی کرده باشد از امر الله به طور مثال مردم انگلیسی زبان مسلمانان انگلیسی زبان فرضاً به طور فرض به طور مثالی گپ را میگیم که نماز خواندن رایج نباشه باز یک انگلیسی زبان را میگیم نماز بخون بازو میگه در قوم ما نماز خواندن رواج نیه در زبان ما در مردم انگلیسی زبان نماز خواندن رواج نیه دیگه احکامات اسلام را اجرا مینه خو نماز نمیشه اجرا مینه مرد نماز خوانه لذا ما هم میگنمین میگپر نعوذ بالله من ذلک در حق همی تو انسانه باز این قوم و این زبان انگلیسی زبان بودن تا میشه باز واجبه کی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 قومی که در جزیره عرب زندگی مینه در شام زندگی مینه باز او قوم بره حج بکنه حج کردن مخصوص از اونایه لازه در حقیقی تا انسان باز این حدود جغرافیهی تاقوت میشه و واجبه که از اینها پرهیز بکنه و را دور بگیره و همچنان یک قوم برازو میگین وقت جهاده و باز تو بیا جهاد بکن،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 تا که از گناهی که معنی امرالله مطال شده بود از او گناه دور بشه تشکر شیخ محترم در لحظات اخیر برنامه قرار داریم کدام پیام و گفتنی هایی به شناندگانی عزیز خاصتا به کسانی که امین حالا صدای مور از طریق موجی صدای خلافت میشنون کدام پیام داشته باشند؟ اگر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 تلسم نمی شود و نمیتوانم را از قاموستان پاک کنید. بیایید به جایی که امیر و معمورش در یک سنگر بی سایبان بیایید به جایی که ارزش قطره آب وضوی بالاتر از خون اوباما و سد و دو سد کافر دیگر است و اینجا سرزمین خلافت است. تشکر شیخ سیب محترم با این پیام جالبتان ما هم از حضور شنوندگان عزیز مرخص میشیم شنوندگان محترم این بود داشته های برنامه امشب تا غدشناسی شما پیام جالبی را از شیخ سیب در اخیر برنامه شنیدید امید است از داشته های برنامه این مستفید شده باشید تا برنامه دیگر که با با معلومات جدید در خدمتتان قرار میگیریم همیتان را بالله لا یالزم سپاری و السلام علیکم و رحمت الله و برکت منهاج تا منحج برنامه فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل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 مسلمانان گرامی این بود داشته‌های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه‌های پشتو دری در خدمت شما قرار می‌گیریم شما را به الله عزوجل می‌سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته